اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شمس به نام خداوند بخشنده بخشایشگر در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و ایدن نجوم و دران هنگام که ستارگان بی شوند و ایزا الجبال سییرت و دران هنگام که کوها به حرکت درآیند آیند و ایزا العشار عطیلت و دران هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و ایزا الوحوش حشیرت و دران هنگام که فهوش جمع شوند و, و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و نفوس زوجت و در آن هنگام که هرکس با همسان خود قرین گردد وود و سولت و در آن هنگام که از دختران زنده بگور شده سوال شود قتلت؟ به کدام این گناه کشته شدند و ایده الصحف نشرت و آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود و ایده السماء کشطت و آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و ایده الجحیم سعیرت و هنگام که دوزخ شعله ورگردد و اذا الجنه و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود علمت نفس ما احضرت آری در آن هنگام هر کس میداند چه چیزی را آماده کرده است فلا اقسم بالخنس سوگند به ستارگانی که باز می گردند الجوار حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند و قسم به شب هنگامی که پوشت کند و به آخر رسد و و به صبح هنگامی که تنفس کند که این قرآن کلام فرستاده بزرگ واری است جبرئیل امین ذی قوت عند دیل مکین که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والایی دارد مطاعن ثمب امین در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین است و ما بمجنون و مصاحب شما پیام بر دیوانه نیست و لقد رآه المبین او جبرئیل را در افق روشن دیده است و ما هو علی الغیب و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد و ما هو بقول رجیم؟ این قرآن گفته شیطان ررجیم نیست فا تذهبون پس به کجا می روید این هو الا این قرآن؟ چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست لمن شاء منكم ان برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد و ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمین و شما اراده نمیکنید، مگر اینکه خداوند پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد